من الله رحمنا الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد دجلتها الزلاثة بحث إسراء ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحث إسراء ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مدرت ونحديثك الآن مشاب مدنا درمون هاتك بيش بفار دوزي من بباحثي كذير ونحديث مدين ذکر بکنیم حدیثی هست که امام بخاری و مسلم در صحیح آنها روایت کردند از انس از مالک بن سعدای هرچند که روایت اثر و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم بیش از ده از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را روایت کردند اگر دقت بکنیم در آخرین آیاتی که در رکعت دوم نماز تلاوت شد داستان موسی علیه السلام و قومش من اسرائیل آیاتی بود در دلداری رسول الله صلی الله علیه و سلام از عنادت بنی اسرائیل در پذیرفتن دعوت موسی علیه السلام یعنی اون مؤمنانی که ایمان آورده بودن به دعوت موسی علیه السلام انادت عناد می‌ورزیدن وقتی که شخصی را پشته بودن دست اون که گاوی رو بکشن عنادت کردن گفتن نه خب چه رنگیه نمیدونم چه شکلیه نمیدونم وزنش چقدره عنادت می‌کردن الان این دلداری حضرت الله صلی الله علیه وسلم اونها مؤمن بودن اونها دعوت موسار را پذیرفته بودن این چیلی ندادت میکردن این مشرکینی که شما انادت میبینید که مؤمن نیستن به خبر آسمان ها ایمان ندارند. یک نوع دلداری هست که انسانی وقتی که عدم استجابت دعوت را میبیند دلتر نشود مهم است که اون چیزی که از وحی خداوند نازل شده به مردم انسان بگه. خیلی ها هستند از اونهایی که ادعای اسلام دارن اِثرا و معراجا تا قاول لنا دوران با این وجود که گفتم ده تن از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث اسلام و معراج رو روایت کردن و الفاظ اونم الفاظ اون حدیث متشابه هم دیگه و در بخاری و مسلم هم و با اِستناد هم شده نفس حدیث سنینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید بین انا عند البيت در روایت عند الكعبه بين النائم واليطالان إذ أقبل أحد الثلاث بين الرجلين لقد قالوا كمن در خانة من الشهس بودن ودر رباية در كنار كعبة أمدن بعد فألتيته بطصد من ذهب ملاءه حكمة وإيمان ان ستفرجتي كأمده بودن حمراهش القاسي بود قاسية الأهيران كفرق حكمة الإيمان بود. فشق من النحر الى مراق البطن نحر ام که رز میشه حیمون الا حتی که انسانم اینجا بهش نحر گفتی میشه میگویند رسول الله میفرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم که از گلویام تا شکمم از سینه ام را بریدن الا این چیزی که پزشکان امروزی این یک کار انجام میدن وقتی کسی که مشکل عروقی داشته باشه قلبش ورسه باشه سینه شو میشه میشتافن و اون قلبشو بیرون میارن اونم رلا رو علل میکنن پس انسان میتونه زنده باشه این درس هایی هست از خود پیرات مصطفی صلی الله علیه و سلام که بچشکن شاید از اینها از این چیزها درس هایی را بگیرند. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلام چی میفرمایند که قلب من با اون دو فرشته بیرون آوردند در اون کاسه گذاشتن و شستن حالا حکمت چیه چرا کاری چی رو کردن گفتیم که شاید مهمترین حکمت این باشه که رسول الله صلی الله علیه و به او تا قراری که مطلع به اسرار غیب بشانند، قراری که با پیامبران پیشین ملاقاتی بکنند و به بهشت خداوند بروند و به آسمانها سیرج بکنند. این شاید بزرگترین حکمت شکافتن صدر یا رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشد. چنین فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم: "ثم وتیت بدابته دون البغل وفوق الحمار" رسول الله علیه و سلم می‌فرمایند که دث حیواني اوردن که از قاتل از قاتل کمی کچکتر و از اولاغ کمی بزرگتر بود دیگر اومده از که اسمش براک بود دفع و قطوه عند اقصى طرفه قدمش در آخرین جای بدنش قرار و در روایتی در آخرین جایی که دیده انسان کار میکند میگه روی اون حیوانی که اومده بود سوار شدن ثم انطلقنا حتى اتينا الى بيت المغدس فأس ببيت السوارسي رسول الله صلى صل الله, الله, صل الله عليه وسلم حيوان شو نعبه امده بيت المغدس دائر رواية خيدي جالي امده الله صلى الله عليه وسلم بحثي كخاصا سواروا حيوان بشان ان حيوان مكامي مي فكون ميقرات دوم شسا فكون مدهات عليه السلام بان حيوان خطاب ميزنان که مکرم تر از رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی سوار از نشده تمامی پیامبران سوار این حیوان شده اند وقتی که حرکتی از این حیوان میبیند میبیند که مواظب خودت باش که کسی بهتر از این سوار نشده میبیند که آن حیوان آن براق در اونجا عشقی می‌ریزد که قرار بهترین خلق خداوند سوارش بشود بهترین این اشک خوشحالی ایا مولا ما همیشه میگیم این عبرتا هست این درس هست این الفاظ تکرار می شود که دل های ما رو تکون در بیاره که ببیند خدا من امتحان بکنه آیا ما مشتاق این هستیم که حظا قل ششمان به چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم بیفتیانند اشک میری وقتی که حکان از خوشحالی وقتی که عبادک رسول الله صلی الله علیه و سلم ثوارش بشه میگیاد که ثوار اون حیوان شدیم تا اومدیم به بیت المقدس بعد مدتی حضرت ابراهیم اون تنابی که به گردن اون حیون بسته شده بود به صخره که در بیروت المقدس بود به اون صخره بستن به اون جایگاه حیوانا حیواناتشونو حیواناتشون رو میبستن میگوید که سپس همراه جبرئیل رفتند و اونها منو پیش نماز کردن رسول الله صلی الله علیه و علیه گفت مکرم بشر بهترین بشر خیر البشره پیش نماز تمامی انبیاء از وقتی که خداوند آدم را فرستاده زمین تمامی پیامبران از آدم تا محمد صلی الله علیه و سلم تمامی اون پیانبران پشت رسول الله صلی اللہ علیه و سلم نماز می کنند و همطور که خودتون دونید بیش از 124 پیامبر خداوند فرستاده همه اینها ها را با کیفیتی با و جسدشون الله و چگونه بوده که خداوند اونها را حش می کند و اونها را زنده می کنه تا اینکه پوشش طرفیان بعد نماز خدا میدونه چطور خداوند قادر بر هر کاری چه فن یكون میشه سپس جل رسول الله صلی الله علیه و سلم من تلقته مع جبرئیل علیه السلام فاتينا السماء الدنيا سپس همراه جبریل را رفتم رفتم تا اینکه به آسمان دنیا رسیدم قیل من هذا به جبریل خطاب اون سربازان آسمان ها گفتن که کی همراهت هست جبرایل گفت که قیل محمد گفته شد که محمده همراه جبرایل بعد ان فرشتهی که اون در آسمان او هات میگید وقت ارسل ایره آره خد صدق گفت میگید جبرایل بله آری ان فرشته میگید مرحبا به ترحیب میگید خوش آمد میگید به آمدن بسلاله صلی الله علیه و سلم رسول اللہ صلی الله علیه و سلم چنین میگید فاتیتو علی آدم علیه السلام و مدم نبز آدم السلام. قفت شو هذا أبوك آدم تكلم عليه قفت شو إن آدم فدرت هات بريش سلامي بفرت گفتم السلام عليكم بعد آدم عليه السلام أنجذ يواب السلام مرضاً بقول مرحبا بك من ابن من ابن والنبي خشامت مديات بفرزن مديات فرزن دم خشامت مديم بفرزن دم وطيمبر بف خدا بنت بدر رواية بالابن الصالح والنبي الصالح بندية الصالح وطيمبر الصالح سفرت مپی در رسول الله صلی الله علیه و سلم من قعد به حتى اتينا سماء ثانيه سفرت مپی رسول الله صلی الله علیه و سلم منو جبرائیل گرفت تا رفتیم به آسمان دوم در اونجا هم بازم همونطور گفتن سوال کردن سربازان نگهبانان آسمان دوم که کی همراهت هست گفتن محمد آمد از نزد یحیی عیوب علیه السلام دو تا طریقه قال همو ابن الخاله به من گفته شد که این یحیا و عیسی هستند که این دوتا بهشون سلام کن گفت که من سلام کردم این چیز حالا مطلبی که از ذهنم پریدم در بحث آدم علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی وقتی در بحث ادم نزد آدم. دیدم که آدم علیه السلام در روایت دیگری غیر این روایت در نزد بخاری از روایت ابوهریره رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی که وقتی که آدم رو دیدم دیدم وقتی که به سمت راست نگاهی میکنه لبخندی میزنه خوشحال میشود وقتی که چهرش را به سمت چپ میگرداند چرخ میدهد به سمت چپ میگرید گریه می‌کند. تعجب کردم گفتم به جبری رسول صلی اللہ علیه که گفتم به جبری چرا آدم چینینه نگاه راست می‌کند، میخندد نگاه چپ می‌کند، گریه می‌کند، وقتی که حالا اون دو تا قسمتی که از اون قشر بزرگی از مردم که به یک اندازه بسیار بزرگی و با اون چهره های که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم میبینند میگه یک قسمتی را دیدم یعنی خلق بسیاری همین که آدم نگاهشون میکند این ور خنده میزند این گریه میکرد گفتم چی خبره گفت که فرزندانش را میبیند از بهشتیان میخندد خوشحال میتود وقتی که به چفش نگاه میکند گریه میکند گریه میکند از این که بچه هاش فرزندانش از ماها در اون جهنم میبیند خداوند ما را از جهنم و خداوند نجات دهد که طاقت جهنم و خداوند را نداریم گریه می کند چون آدم بود علیه السلام که تحمل گناهان بشریت را باید بکند توبه کرد و خداوند توبهش رو پذیرفت لیکن اولین شخصی که گناه کرد آدم بود علیه السلام نتونست جلو به خودش رو بگیره یک بار نتونست یک بار نتونست جلو به خودش رو بگیره از بهشت خداوند ترک می شود و به زمین خداوند فرو میآید بر سر ماها در سی باید بگیریم اینجا بر سر ماهایی که هزاران, هزاران گناه از این دنیا خواهیم رفت و این همه گناهان بر سر ما چه خواهید در اومد. خداوند یک گناه را از آدم نبرد. او را بیرون کرد از بهشت خداوند ما هم رانده شدگان از, جه... از بهشت خداوند نوشد چون جهنم خداوند نسان تحمل بیروز نمیدنم پریدوز بود غذای داق جلوبم بود کاشوگ بردم توی دهنم غذا خیلی داغ بود لبم سوخت گفتم ای خدا این که هیچی نیست لبم سوخت زخون و اون تعامل عثیم چی خواهد شد اون غذایی بیاده این باشیم اون غذایی وقتی که سات تشنگی میکنیم آب جوشان به همون غذای جوشان را به میدن که از تیزاب و عثیب بهتره در مهده انسان روده هامون دگرگون میشود اون غذایی که از تشنگی از اون لبه تشنه از خداوند آبی میخواهیم آبی که به میدن روده هامون سوراخ ها میشه پاره پاره پاره میشود آیا رو داریم در این دنیا کمترین چیز حرارت غذا را تحمل نداریم چه برست به عذاب آخرت تحضیقمون گذاشت ببین ما دیگه عهد برای این بوده که ده دقیقه دو شب شب و شب جمعه ملوهمتون باشید. قصه این بحث اصرا و معراج خداوند چقدر منتوفیق بده بحث اصرا و معراج ادامه دارد تو انشالله بیرسیم به دیگر پیام برم و دیگر آسمان ها بحثا زیاده انشالله خداوند به منتوفیق بده که در این از این قصه ها بگیریم جونت راست از الله علیه سلم بحثی که برای اینه که دل‌هایمون نر بشه برای اینه که ما درس بگیریم برای اینه که ما به خدا تر بشیم این درکای هست خدا رسول الله صلی الله علیه همینطوری نبوده که رفتن به آسمون‌ها برای این بوده که ایمان ما امتحان بشه تقوای ما امتحان بشه و خدا ما رو تقویت بکنه سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمدك وصلوا اللهم على محمد وعلى ال محمد